فصل دودهم معمولا فرانک بعد از زرهای جامعه ما را از بلک فاکس میآورد. او جلوی در خانه میپیچید و ما را پیاده می کرد. ما هم مثل سنگی که از فلاخند رها شود از ماشین بیرون می پردیم و به سوی خانه میرفتیم. اما همین که وارد سرسرای وسیم می شدیم هر لحظه قدم هامانکنتر میشد. لازم بود که ما با وقار کامل وارد اتاق نشیمن بشویم زیرا می دانستیم از ما چنین انتظاری دارند. همیشه طبق آنچه در کتابهای آداب معاشرت نوشته شده با پدرمان سلام و تعرف می کردیم. او در روزهایی که منتظر ما بود کارش را کنار می گذاشت و اگر هوا اندکی سرد بود جلوی بخاری منتظر ما می ماد. دو تا دم در دست می گرفت و آتش بخاری را میدمید تا کل بی اندازد. ما می سلام پدر وقتی کوچک بودیم همیشه او را پدر خطاب می کردیم. وقتی بزرگ شدیم کم کم او را با کلمه مهرامیستره بابا صدا می نمودیم. پدرم می و چه حالتان چطور است؟ سپرس نگاهی به اطراف میکرد و می افسود این روزها وضع مدرسه چطور است وقتی ما وضع مدرسه را شرح می‌دادیم او با دم در بخاری می‌دمید تا آنکه بالاخره می‌ایستاد پشتش را به بخاری می‌گرفت و خودش را گرم می‌کرد گاه گاه سرش را تکان می‌داد و یا حرف ما را قطع می‌کرد و می‌گفت که خود او هفته را چگونه گذرانده است پشت سر او زغال سنگ فروزان های آبی کوچک می‌کشید و اتاق را با حرارتی مطبوب پر می کرد حالان که هوای بیرون سرد و سوزن بود اما گاهی اوقات پدرم بخاری را چنان گرم می کرد که من و سیدنی از گرما ناراحت می شدیم اما به نظر پدرم گرما هرگز به قطر کفایت نبود شاید مه سرد لندن که در دوران کودکی در مغز استخوان او نفوذ کرده بود باعث شده بود که او در بقیه عمرش از اندکی سرما به خود بدررسد. ساعت ششیم یا هفت اگر پدرم در خانه خانهشا میخورد ما هم با او در اتاق ناارخوری غذا میخورردیم. این غذا خوردن برای من و سیدنی در دوران کودکیمان بسیار ناراحت کننده بود. زیرا در این مواقع انضب کتابی و خشک پدرم دردناکتر از همیشه جلوه میکرد. از ما انتظار داشت که رفتار عاقلانه داشته باشیم. یعنی در سراسر غذا خوردن حرف نزنیم مگر اینکه با ما حرف بزند. ما مثل عسا روی صندلی های مینشستیم و پاهای کوتاه ما که به زمین نمیرسید با حالتی عصبی نوسان می کرد. بعضی وقتها پدرم با ما حرف میزد. او همیشه ما را به ترتیب چارلز و می خطاب می کرد و هرگز اسمی مهرامیستر بر زبان نمیآورد. وقتی با ما حرف میزد ما جواب می دادیم. در غیر این صورت ما ساکت مینشستیم و قضا می‌خوردیم و او در افکار خود غرق میشد. صورتش به وقار می‌گرایید و چشمانش به دور دست خیره می‌شد. مادرمان می‌خواست ناهارمان را فوری بخوریم و خلاص شویم. اما این را هم از ما دریغ می‌داشتند. پدرم می گفت: "به این تندی قضا نخورید. شما تا موقعی که بزرگترها از سر میز بلند نشدهاند نباید بلند شوید." ولی گاهی پلیس مهمان ما بود و در آن صورت ما از نشستن سر سفره معاف بودیم. پلت فوری خود را وارد مرککه کرد. از همان اول ما احساس کردیم که او متحد ماست او با ما حرف میزد ما را به حرف میکشید اندکی ما را میخنداند. و در همه حال ما را با برق مخصوصی که در چشمانش بود تشویق میکرد و دل میداد. اما وضع دکتر رینوردز جراح و روانپزشک معروف که اغلب به دیدن پدرم یامد به کلی طور دیگری بود ما این طبیب را که متولد انگلیسی بود طی سالهای دراز بسیار می دیدیم تا آنکه در 1947 در سن 66 سالگی بر اثر استراب ناشی از آخرین بیماریش خودکشی کرد او در کارهای هیپنوتیزم و کارهای مشابه شرکت داشت مادرم میگوید گوید هنگامی که برای اولین بار پدرم دکتر رینالدز را شناخت از خارهای جادویی و احزار ارواح آنها وحشت زده شده بود. به نظر من و سیدنی حالی عجی پیرامون شخصیت دکتر رینالدز را فرا گرفته بود. حتی زن اول او هم از این قرابت بهرهی داشت. ما بعد فهمیدیم که این زن هنگامی که در ساحل دریا با شوهر دومش ماه اصل می وستیدی کوست ماهی ها